سپاسگزارم که تا این لحظه با ما همراه بودید. در این زمان نوبت به اخبار دانمارک در هفتهی که گذشت میرسیم امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره. پسر ایرانی در دانمارک همه را انگشت به دهان کرد. بازدید پنجاه میلیونی ویدیوی آغوش همدردی پسر ایرانی برای ها بازدید از ویدیو اختصاصی آغوش همدلی پسر ایرانی برای دانمارکی ها از مرز پنجاه میلیون نفر گذشت. روزنامه بلدا سال گذشته از پسر ایرانی آریان کاشف یک ویدیو منتشر کرد که این ویدیو با استقبال بی از سوی کاربران جهان روبرو شد. آریان پسر ایرانی خود را مسلمان معرفی می کند با چشمانی بسته و دستانی گشوده در گوشه از میدان و مراکز خریدی ساده و از راه گذاران اگر به او اطمینان دارن او را در آغوش بگیرن یک دست نوشته کنار پاهای او بر روی زمین است بروی بر یکی از آنها نوشته شده است من مسلمان هستم و به من می گویند تروریست در قسمت دیگر دست نوشته آمده است من به شما اطمینان دارم شما چطور؟ اگر شما به من اطمینان دارید مرا در آغوش بگیرید مردم، دور او حلقه زدند برخی دیگر یکی یکی می‌روند و مرد را در آغوش می‌گیرند و برخی هم از این صحنه عکس می‌گیرند این ویدیو بارها و بارها در شبکه‌های اجتماعی بازنشر شده است رأی 85 عضو سازمان ملل از جمله دانمارک با برخورد بیشتر با نقض حقوق بشر در ایران کمیته حقوق بشر مجمع عمومی ملل متحد روز 25 آبان با 85 رأی موافق قطنامه ای را به تصویب رساند که در آن نسبت به نغز شدید حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی جدی می شود در این قطنامه از حکومت ایران خواسته می شود که به روند تهدید آزادی بیان و اندیشه و اعتقادات مذهبی بازداشتهای گسترده خودسرانه و روبودن مخالفان متهم پایان دهد. ایران اما متن قدنامه اراده شده را رد میکند و میگوید حامیان آن خود ناقص حقوق بشر هستند. دانمارک از جمله حامیان این قدنامه در این حال از افسایش اعدام در ایران، نقض حقوق زنان و ضعف حکومت قانون شدیدا نگرانی کرد. نماینده ایالات متحده نیز نگرانی خود را در مورد وضعیت و حقوق اقلیت ها و نیز افراد زیر سن قانونی ابراز کرده است. ایران به دلیل شمار بالای اعدامها و به طور مشخص اعدام افرادی که زیر سن قانونی مرتکب جون شدن با انتقادهای های گسترده ای روبروست. این انتقاد البته به تازیگی در گفتمان مقام دولتی و قضای ایران نیز باستا پیدا کرده است که از کارآمد نبودن شمار بالای اعدامها به ویژه در مورد متهمان عرضه مواد مخدر سخن گفتند بنابرای گزارش ها امده احکام اعدام در ایران در رابطه با جرام مواد مخدر صادر می شود بزرگترین تولید کننده توربین بادی در جهان و دانمارک 350 نیروی خود را اخراج می کند شرکت بزرگ وستاس بزرگترین شرکت توربین سازی دانمارک چهارشنبه تصمیم خود مبنی بر اخراج 350 نفر دیگر از کارکنان این شرکت خبر داد قرار از جزئیات بیشتر این کاهش نیرو تا پایان دسامبر سال 2016 اعلام شود. تر بیشتر فرصت شغلی و نیروی کار در چارچوب بخشی از برنامه برای سرفجوی در هزینه‌ها به امور اجرا در خواهد آمد. و این شرکت از سال میلادی بررسی این طرح را در دستور کار خود گذاشته است. نارامی ها در کوپنهاک برای سومین ماه متوالی ادامه یافت. شب گذشته دهها خودرو به آتش کشیده شد بیشتر این حریخ ها در شهر کپناک و به ویژه در محله تا روی داده به گزارش رسانه های محلی نارامی های ماه گذشته بامداد صبح چهارشنبه ساعت 5:48 و نیست در تا و شهرک های مختلف ادامه یافت پلیس شهر کوپنهاک از افزایش تدابیر امنیتی در این شهر و افزایش گهزنی در سطح شهر خبر داد. ماه ماه‌های اخیر در شهر مالمو سوئد حالا به کوپنهاک پایتخت دانمارک هم سرایت کرده. هنوز کسی در این رابطه دستگیر نشده و دلیلی ها نیز مشخص نیست. امام جماعت مسجد شهر اودنسه در دانمارک به اتهام زدیعت با یهودیان محکوم شد. امام جماعت شهر اودنسه به اتهام با یهودیان و خطاب کردن فرزندان یهودیان به میمون و خوک محکوم شد. محمد خالد، طبعه دانمارکی و مصری الاصل است و بیش از 20 سال است تا تاکنون در دانمارک اقامت دارد و امام جماعت مسجد اودنس است. وی در سال 2014 در مسجد اودنس سخنرانی کرد. در آن سخنرانی به کودکان یهود و مردم اسرائیل توهین کرد. به گزارش شبکه TV2 پس از انتشار نوار جنجالی امام شهر اودنسه درباره یهودیان، وی روز سهشنبه در دادگاه احزار شده است و به نجات پرستی متهم شده. ماده 266 قانون جزایی دانمارک هرگونه تهدید، توهین یا تحقیر گروهی از مردم به خاطر نژاد، رنگ، پوس، ملیت، قومیت، مذهب و یا گرایش جنسی را ممنوع و نقضان، آن جریمه نقدی یا زندان را در پی خواهد داشت. دانمارک بزرگترین صادر کننده درخت کریسمس در اروپا بلژیکی ها به نسبت به سایر کشورهای اروپایی بیشترین هزینه برای خرید درخت کریسمس را پرداخت کرده و برای نمونه در سال گذشته 5 میلیون یورو برای خرید این درخت پول پرداخت نمودند از سوی دیگر بلژیکی ها پس از دانمارک بزرگترین صادر کننده درخت کریسمس هستند دانمارک سالانه 50 میلیون یورو درخت کریسمس به سایر کشورها می فروشد یلسن یالسن وزیر امور خارجه دانمارک پس از یک سری ملاقات با رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل اعلام کرد ممکن است اتحادیه اروپا به یک توافق محدود با دانمارک درباره یوروپل رضایت دهد دانمارک پس از چند سال بحث و تبادل و نظر امسا تصمیم گرفت جتهای اف شانزده خود را با جتهای اف سی و پنج ساخته شرکت لاکید مارتین آمریکا جایگزین نماید پیتر کریستینسن وزیر دفاع از پارلمان خواسته مبلغ 100 میلیون کرون برای خرید قطعات یدکی اضافی اختصاص داده شود دانمارک تعداد بیست و فقره از این ها را به مبلغ سه مامیز یک میلیارد دلار سفارش داده است به دنبال مشاهده آنفلانزای مرغی در اردک های وحشی، اداره دامپزشکی و غذای دانمارک به کسانی که پرندگان را در منزل پرورش میدهند هشدار داد. حیوانات خود را محصور و اجازه خروج از لانه بانها ندهند. راسموسن، دایش تقصیر ماس، راسموسن نخست وزیر سالهای 2001 و تا 2009 گفت دانمارک و دبیر کل... دبیر کل سابق ناتو گفت عدم ارائه یک طرح سیاسی کارآمد برای عراق، افغانستان و لیبی توسط های بین المللی باعث داعش شد آقای راسموسن در مصاحبه با کانال تلویزیونی دیار گفت وقتی که یک کمپین نظامی شروع می شود باید حتما برنامه برای بعد از پایان جنگ روی میز قرار گرفته باشد ما برای عراق، افغانستان و لیبی چنین برنامه‌ای را در نظر نگرفته بودیم. من هم در زمانی که دانمارک را در جنگ مشارکت دادم این را درک نکردم، اما حالا متوجه اشتباه خود شدم. دانمارک کنترل مرزهای خود را تا 12 فوریه سال 2017 تمدید کرد. قیمت کالاهای مصرفی در دانمارک در ماه اکتبر نسبت به ماه قبل اندکی افزایش داشت. در این ماه نرخ تورم از 3.0 درصد در ماه سپتامبر به 4.0 درصد افزایش پیدا کرده. اخس گواهینامه رانندگی برای 17 ساله ها در دانمارک امکان پذیر شد. روزنامه بیتی در خبری نوشت با تصویب پارلمان دانمارک گواهینامه رانندگی برای 17 ساله ها در دانمارک از ماه ژانویه امکان پذیر شد لازم به ذکر است بسیاری از کشورهای عضو اعتاد یروپا این قانون را قبلا اجرا کرده و مورد استقبال قرار گرفته است مردم جنوب یولند دانمارک و مهاجران این شهرها پیکرهای یک مادر و دو دختر سوریه که در فریزری در آپارتمان پیدا شده است برای خاک سواری به قبرستان تشریح کردند در یک تحقیق آمده که در رتبه بندی اعتماد به گروه های در دارماک سیاستمداران در تای جدول قرار دیگرن. اعتماد به پرستاران بالا بوده و با اعتماد ترین گروه حرفهای هستند. قضات و پزشکان در رتبه های بعد قرار دارند. در آن سوی جدول سیاستمداران در تای جدول قرار دارند که یک پله پایین تر از دلالان اتومبیل و خبرنگاران می باشند. و آخرین خبر، اعتبار دانمارک به عنوان یک کشور پیشرو در امر حفاظت از محیط زیست و مبارزه علیه آلودگی خشدار شده. بعد از پنج سال برخورداری از رتبه اول این کشور در شاخص 2017، عملکرد و هوایی به رتبه 13 سقوط کرده است. تندروستون پایدار عزیزان.